و حسره بی ستت موازه که من فدمت تو شما ولی ربط شبه الجواب اینم خوندیم نحوه اللذی یعتینی فلخون درهم گفتیم اینجا اللذی عداد شرط نیست ولی مثل عداد شرط استعمال شد آدم خیال میکنه یک جمله که بعدش یعتینی سبب است و جمله لخون درهم مصرفت گرچه از نظر تلکیبی اللذی چیه؟ مقتداست و یعطینی سلست لخون درهم این جمله خبر ولی چون مشرب سبب و مسببی پیدا کردن میگه کسی که کسی که می آید پیش من برای او درهم است شما از این جمله میفهمید که چی؟ با که مضمونش خبره میفهمید که اومدن سبب گرفتن درهمه یه همچین تعبیر شرف سببی رو ازش درک میکنید لذا یک فا هم اگه بر سر این اللذی در بیاری بر سر خبرش اشکالی نداره بشم بگم فای شبه جزا فای شبه جوا اللذی یعتینی هو حالا این اللذی ممکنه خودش مفتدا باشه ممکنه صفت مفتدا باشه اونم اشکالی نداره مثل امن الموته اللذی تفرونم این إن الموت الان موت اسم اینم که در اصل موت الازی صفت موت الموت من ها که فرار میکنین ازش فا اینهو ملاقی کن فا اینهو شبه جزای الازی و یکی هم فا با آتفه باشه فتوفید و تعقیب افاده میکنه تعقیب رو یعنی پشت سر همه مدم رو دادش شد و ترتیب به نوعه و افاده میکنه ترتیب رو تعقیب یعنی که یکی در عقب دیگری یعنی در واقع همون چیزی که شما مثلا در فا تعقیب دارید ولی در سمه تعقیب نیست دلیل یعنی یه مرزاق با چیه؟ فاصله هست و پشت سر هم در به هم دیگه نیستن سرقیب رو میشه معنا کنی که توی کتاب های دیگه خوندیم به اتصال آه؟ یعنی با اتصال بین این ما قبل و ما بعد رو نشون میده درسته در دو تا زمان اتفاق افتادن ولی به هم دیگه چی هست؟ بینشون فاصله نیفتاد اگه فاصله بیفته جا جای آوردن چیه؟ میگه تعقیب حالا تعقیب هر چیزی هم به اندازه خودشه دیگه اینو بلدیه مثلا فرض کنید من دارم غذا میخورم شما میگید اکلا فلانون سکت همه فلانی غذا خور بعد نوشت این کهیه؟ به محض اینکه آخرین لغمه رو خوردم دستم رو پاک کنم و بشینم بنیمیزم دو تا فیل با هم باید چه اکلا خودش ممکنه یه رو پیشه. بیست نیم ساعت دور میشه یا میگید مثلا نامه نامه پلانی خوابی فسته غذا بلند شد فکر دارد اینا به شرد این که پشت سر هم هر چیزی اقتصادش بزارد مثلا مثالی که میزنه میگن تزف وجه فلانون فلانی ازدواز شد فول درهو بلند پس به سر شد بچه داشت. فعول در افو بلد اینوش میگن موقعی که ازدواج کرد بعد از ازدواج به اندازه مدت هم سید 9 نه ماه کمتر یا بیشتر به تعداد مدت هم بعد بچه داشت اینوش میگن چی؟ فعول در اما اگر ازدواج کرد سه سال بعد بچه داشت باید بگیم چی؟ سوم مغول در افو بلد باید نه ماه طول کشیده نه ماه خورده ولی باز ما فاع بود چرا چون اینا به هم مدتفل. یعنی در واقع همون اتصال فعل قبل به فعل مشروط تعریف به دو نوعش که یکی حقیقیه که یعنی واقعا فعل اول اول اتفاق افتاده بعد فعل دوم بعد فعل سوم همچون تا آخر مثل چی قام ازیدون فهم در صورت که اول زید وایسته باشه بعد اند وایسته باشه بعد بکون تو روشن همچون تا و یکم ترتیب ذکری که گفتیم ترتیب ذکری یعنی چند تا چیز رو میخواد چکار کنه بشموره حال مخاط از یاد نیفته ها از یاد نیفته لذا همه رو ذکر میکنه یعنی قصد نداره که اینا تاثیر خارجیشونن هم به میشه که باشه یعنی مثلا میگه فرض کنید دفنم کن در شب قسلم بده در شب هنود کن در شب نماز بخوان در شب اینها ممکنه که جلو عقب بشه ولی منظورش اینه که تمام اعمال تجهیز باید در شب اتفاق بیفته اینو رو بگه حالا ممکنه که ابتدا و انتعا بگه یعنی یک سلوه بسته که یا شکر ترتیب این یه معنای ترتیب ذکری که دقیقه یه معنای دیگه ترتیب ذکری که از این آیه و نوهندت و فقاله در میاد اینه که ترتیب ذکری یک قسم دیگری هم دارد اونه که دوتا یک کاره یک بار به شکل مجمل گفته شه یک بار به شکل مفصله یعنی ترتیب ذکری یعنی یه بار به شکل مجمل بگیم، بعد به شکل مفصل بگیم، میشه بیمشه ترتیب ذکری الان نگاه کنید نادا نوحون رب دارون یعنی چی؟ یعنی ندا کرد نوح خودش خودشو خب ندا کرد یعنی یه چیزی گفت به خدا دیگه اون مجمله چی گفت معلوم نیست از این بار بعد میگه فقاله پس گفت ان ابنی من احلی. گفت خدا پسر منم از جزء اهل منه تو گفتی اهل منو نجات میدی پس منم اهل نجات بده آه. ها شد این دومی قاله اینا یعنی حالت نو دو تا کار که نکرد که یه بار ندا بده بعد یه بار بگه که ان ابنی من اهل دو تا کار که نکرد یه دونه کار گفت خب ان ابنی من اهلی یه با به شکل مجمل گفت گفت نو خدا را خوان پس گفت این پس گفت در واقع چیه تفصیل و توضیح اون نداست این ذکر مفصل بعد چی چی مجمله پس با قول معروف ترتیب ذکری چند قسم شد دو قسم شد یکی به اون شکل یکی به این شکل. و نادا نو هون غفه هون فقال این نو خدا هم گفت نه اهل اونه که تو راه باشه امنه و عملان غیر صالح این صالح نیست چون صالح نیست اهلیت تو هم سوزیننده اهلیت به جسم که نیست که اهلیت به قبول و پذیرش شد تو. اگر قرار باشه که پسر تو باشد اما در دین تو نباشد این اهلیت و مسئولیت برای روی خدا میگه اینهو عملون غیر و صالح این عمل صالحی ای نیست چون عمل صالحی نیست عملتون بسید بعضی از مفسرین یه مداد کس میکردن کردن این گفتن نه این از اهلش نبود پسرش نبود مثلا پسر زنیش بود نمیدونم خلا بود نه پسر خودش بود پسر حقیقیش هم بود خودش هم داره میگه این نعب نید پسر من اما پسرش چون براه نبود این براه نبودن باعث شد که اون که سر نور بودن هم براش عرضه شید فقط و قد یفید و ترتب و لاحقه ها سابقه ها ترتب بالاش میدید تتبق مصبب بودن میگه وگایی اوقات افاده میکنه یعنی مسبب بودن لاحقش رو یعنی دومی از اولی که به ما این فا میگید چی؟ سببیت یعنی این فای عاطفه گاهی اوقات مفید سببیت هم هست و قد یفید و ترتب لاحقه الان سابق، سابقه ها فتوسن ما فا از سببیت بشن میگن فای سببیت فای تفریعه فای تفریع هم میگه. فای نتیجه هم سه توس فا از سببی یه و فتوس به مخزر رتن خب من از سماه ما اند قبلش داره خب قبل نقل نقمی کرد که ما میفهمیم توست به حول مخزر رتن و یوم عرض سلام از السماء ماءا او خدایی است که از آسمان چی فرستاده؟ آب فرستاده. خب این از آسمان آب فرستادن سبب مابعد و تسبهه و عرض و مخزرده. اینجا توس به معنای طسیر نه اینکه صبح میکنه یعنی صبح از خواب پیدا میشه، یعنی اینکه یعنی صبح. پس و مخزرده یعنی با تطیر و ارض چی بود؟ به حول عرض و توست به هو عرضه مخذرتدن پس زمین می چی؟ چی؟ز یعنی سبز شدن زمین چیه؟ مسبب از نزول آب از و توست به هو ارزو مشخص شد حالا فای سببیت دقت کنید. فای سببیت خودش یعنی فای که مفید سببیت دو جوره یکی فایی که آتفه هست و مفید سببیت هم هست مشخص مفید سببیت یعنی همون فای عاطفه بالا مفید سببیت هم بگید هست مشخص فای آتفه که مفید سببیت میگیم انزل از سماع ما قیاس و انزل از من سماوی ما، فاصل به آن عرضو، فاصل به تل عرضو مخزرلا بی، فاصل به تل عرضو مخزرلا بی. یعنی زمینم شد چی؟ علیه آت فار، انزل است. اما سببیت ونچه؟ میفهمونی تو و تحقیل رو هم گفتید چیه موشخص شد یه موقع هستش فقط و فقط سببیت دیگه آتفه یعنی عقب امکان نداره فقط و فقط سببیت مثل انا اعطاینا که الکوسر فصل لله رفت بکر انا اعطاینا که الکوسر یعنی ما به تو کوسر دادیم بروس شد خب چی شد فسل پس تو نماز بخوان فسل لراب بک اونم برای پروردگاه تو که این وقت به تو نماز بخوان ونهر و در نمازت هم دستات تو دا گلوگا ونحر. نه بروس من خب فسل که بک ونهر مسبب از ماغر چیه یعنی علتش اینه که ما به تو کوسال بدی. تو در همینم به شکرانش تو نماز این شکلیه. نماز کامل و تام. خب درست اما دیگه اعتفه نیست. چرا اعتفه نیست؟ چون فعل فعله امر. فعل اندونه میشه نمیشه به جای چی؟ فعل اخباری. یعنی حذف جمله انشائی به جمله اخباری غلط است. چون حذف جمله انشائی به اخباری غلطه این فارهش میان پای مجرده سبب یعنی فقط اومده بین این دو تا جمله کار کنه مجرده مثل پای که بین فعل شرط و جزای شرط هیچ موقع جایرش و حرف به جای پای شرط بگیر نمیکنه فقط برای ایجاد تبعیض اینانامطوره پس بنابراین این این فای سببیت دو نوع شد یکی اینکه چی آتفه است و سببیت رو میفهمه جایی جاییه که امکان عطف وجود دارد یکی چی؟ آتفه نیست و فقط برای مجرد سببیت اونجاییه که عطف تو کلام چیه؟ غلطه مثل اینکه عطف به اینشا به اخبار میشه یا عطف به اخبار به اینشا میشه فتوس به اول عرضو مخذرده و قد تختت سوهی نعزم به اسم نتیجه و تفلیم میگه کاری اوقات به این فاق نتیجه و هم فقط تخته و, و مختص میشه در این انگامی که سببیت رو میفهمونه به اسم نتیجه یا ده. یک فای دیگه هست بهش میگن فای فسیه و قد به او ان محضوبه. فای فسیه اینه که خبر میده از یک چیزی که قبل هست تو شده یعنی از فسیه یعنی آشکار کننده پایی فسیه یعنی پای که آشکار میکنه از یه جنبهی که یک کلامی که قبلش بوده مشخص وقت تنبه و ان مخزوفه فتوسم ما فسیحت هم نامیده میشه فسیه انده بعضه نزده بعضی از نهات بهش میگن پای فسیه حالا مثال بزنه نه بود فضره به اصاک الهجره اون فضره رو کاری نداری ما اون فضره باش رب تو به ازره به عساکه الحجره خب قوم بنی اسرائیل همراه با موسی اومدن اینها دوازده بطن بودن دوازده تیره بودن سر یک آبشخوری که رسیدن با هم نظامی میکردن هر کسی طرف می میگیرد خدا به حضرت موسی فرمود که ازره به عساکه الحجره الحجر یعنی تنگ ازره به حجره به ازاد. یعنی بزن این سنگ رو با چی؟ با ازاد یعنی با ازاد به این سنگ چی میشه؟ فنفجرت اس نتا عشرت عین فنفجرت اس نتا عشرت عین منفجر میشه آه؟ اس نتا اشرت عینا گشوده میشه دوازده تا چشون و هر کدوم اینها آبش خود و خودشون رو میشناسن دیگه از این اختلاف و داد و دعوا یعنی کار تنظیم میشه با قول معروف هر کسی سر جای خودش میشینه یعنی اینطور داد و دعوا یه چشم رو دواز تا تیره خب معلوم هر کسی میخواد بکشه چشم خرم کار رو تقسیم کن تا دعوا شون ها مشخص شد خب این فنفجرات شما اگه اینطور باشه ازرف به کل هجره فنفجرات این فنفجرات معلومه که عطب نمیشه به ازرف چرا چون فیل همیست و این فجرات چیه؟ فیله ماضیه عطف نمیشه عطب به این شام چه ولی این امفجرات به ما میفهمونه این باش که قبل از این چی؟ امفجرات یه چیزی بوده اون معتوب و نرک بوده و یه جمله سبسده این اینطور بوده ازر به ازاکل کل فضربم فنفجرم این طور نیست یه دونه فضربم اون وسط شده افتده یعنی افتاده که انه مضمون کلام نیست داره ازا بقولون همه نهی که بوده و افتده این آدم میفهمه که اینجا یه جنبه ای باید تقدیر ذهنی بشه که گفت خدای تعالی بزن موسا با به حجر به این سنگ، الهجر به این سنگ پس زد منفجر شد فنفجره یعنی فقط منفجر شد و منفجر شد یعنی زد منفجر شد بلا نداده که منفجر نمیشه به دوازده تا چشم یعنی زره به فنفجره این فنفجره باش نشون میده که یه دونه جمله قبل از او چیه در تبدیل فنفجر قر قد ترد و اسمن به معنا یکفی قد گویو قد اسم فعل است به معنای چی؟ یکفی یا, یا هست. هست. هست, یک یعنی هست یا اسم نه اسم فیل هست به حس مشخصه؟ قد اسمن به معنی یکفی یعنی اسم یا اسمی به معنی حس حالا اگه من خواستم با این بگم که منو کافیس یک درهم چی میگم؟ نه و و قدی درهمون الان در صورت اول قدنی به معنای یک بی. قدنی درهمون قدش فعله اسم فعله میگیم اسم فعل به معنای یکبی زمین فایلش چیز اون در همون پایش نون نون بقایه یا ما فولن به انگار گفته یکفی نیه چی, چی در همون پرسیدی؟ یعنی؟ ها؟ قد اسم اسمفه به معنای یکفی نون نون بقایه یا ما فولن به در همون چی؟ پایش حالا یعنی یک اومد کنن قاد نی در اما اگه گفتم قدی درهمان قدی در همون، این قد دیگه به معنیه چیه؟ حسب اضافه شونه به چی؟ به یا مضافانه در درهمان چیه؟ خبرش قدی مفتده درهمان خبرش یعنی حسبی در همون. میگن حسبونا کتابون دا یعنی کافی نا قدی یعنی کافی جوابیت میکنه ما رو در اگر قد به معنای یکفی باشه اسم فعل باشه با یا بیا درصد در باید نمونه اگر به معنای چی باشه یکفی باشه اسم فعل باشه با یا بیا درصد در باید نمونه به ولی اگر به معنای حسب باشه و یا مضافن الهیهش باشه آه و قد بشه محتدا دو جور میاد 90 درصد بدون نونه به میاد 10 درصد ممکنه با نونه به قایه مشخصه 10 درصد ممکنه با نونه به این به خاطر این اون دست دسته و که رو بقایه میاد بخاطر که دال رو ساکن نگه داریم دال چون مبنیه دیگه قد مبنیه دال سکون داره برای اگه بگیم قدی دال میشه چی؟ مکسور برای اگه کسه مبنی رو نگه داریم میگیم چی؟ قد نی مثل من من ان حرف جر اگر با یا بیاد میگیم چی؟ من نی ان نی یه نونه بقایم میایی واسه خاطر که سکونه منو ان رو چکار کنیم میگهده اینجا هم همینطور. بچی گفتم گفتم قد اگر به معنای یکی بی باشه صد درصد با نونه بقایم امرار با یا اگر و اون یا میشه مقبولون بهش و پاید میشه ولی اگر به معنای هست باشه اضافه میشه و در بین مضاف مضاف, مضاف نه نونه بقایم نمیارن 90% نمیار ولی 10% هم ممکنه قانونه به قایه بیاد اون موقع نونه به قایه واسه چیه؟ واسه خاطری که سکونه دال رو برای ما کنه؟ حفظ کنه مثل منی و و هر رو تقلیله قد که هم حرف تقلیل هست اما با چی؟ محل مزاره با مزاره غالبا اینطوریه ها ها؟ غالبا قد با فیل مزارد دلالت بر چی میکنه؟ تقلیم میگیم قد یا جی او زیدون یعنی چی؟ قد یا جی او زیدون یعنی گاهی میاد اما اگه گفتیم قد یا علمالله قرآن داریم و قد تعلمونن دی رسول الله اینو نوع قدامات چیه؟ ماله تحقیقه قد یا علمالله یعنی نهی که گاهی خدا میدانن یعنی قدعن میدانن قدر پت بنابراین احتمال دارد چند درزد که برای, برای تحقیق. تحقیق هم بیارد حتما و حتما با مزاره برای تحقیق نیست قدرین داریم اونجا و تحقیق و برای تحقیق میاد هر که تحقیق محل موازی غالبن این غالبن برای هر دو هست و گایی اوقات با موازی که میاد برای تحقیق یعنی 99 درزد گاه یه اوقات هم با ماضی میاد فقط برای فاطر که جمله حال رو درست کنه بایدون باشه کنمتیم ماضی اگه حال باقشه قد میخواد اون این قد پیدا رابط میشه یعنی برای باقش فقط حالیت رو بهش یه نزاد درستان اون دیگه تحقیقیت ازش فهمیده و تحقیق مرمازی غالبا گیل هست گیلی برگشته گفته وقد توغرقه به هومنال حال قیلی گفته قدگای و به موازی رو نزدیک به زمان حال میکنه درست شد؟ قد و تو قدره بپنه مند حاله گفته که قدقامت سلاح اینو تو ادایه خوندیم یعنی چی قدقامت سلاح؟ یعنی همین چند لحظه پیش نماز اقامه شد یعنی میاره نزدیک میکنه به زمان حاله درست؟ اینو گفته این اشکال نداره ها اما این تیکه این تی که کلام قیل اشکال داره که گفته قیل این تیکه که قبلش که تو قدر به حال اشکال نداره قد فعل مازی رو که به زمان حال میکنن این مشکل نیست اما ومن سمت التوزمت به حالیت المسدرت به و از همین جهت یعنی از همین جهت یعنی چی؟ از همین جهت یعنی این از این جایی که خط به ماضی رو نزدیک به زمان حال میکنه التوزمت لازم شده، واجب شده در فعل حالیه، یعنی در جمله حالیه. در جمله حالیه ای که مصدر باشه و عاد مصدر باشه به مصدر باشه به مازی یعنی در جمله حالیهی که مصدره به مازیه لازم شده چی؟ بچه را؟ گفتم واسه خواهد این قد بیاد مازی رو نزدیکش کنه به حال تا بتونه بشه حال یادتون باشه گفتیم این کلام درش چی شده؟ ها؟ غلط پیدا شده به چه دلیل؟ قد میاد فعل مازی رو نزدیک میکنه به زمان حال نه به حال شده میگم فعل مازی نمیتونه حال بشه چه حالی نمیتونه بشه؟ حال زمانی چون ماضیه نه حال نحوی حال نحوی بیان حیعت میکنه حال بیان حیعت چه با زمان حال بشه چه با زمان گذشته بشه چه با زمان آینده فرقی نداره بیان حیعت مخواد به فعل بشه این که شما میگید قد اومده فعل ماضی رو به زمان حال نزدیک کنه تا بتونه بشه حال و بین ماذویت و حالیت تناقض نباشه بابا بین ماذبیت و حالیت تناقض زمانی که حالیت ازش اراده زمان بشه نه حیعت اگر حیعت بشه که هیچ تناقضی اینجای کنابشش این ای بابا چی رو با چی مشتبه شده برش حالیت به معنای زمان حال با حالیت به معنای بیان حیعت یعنی حال نحوی مشتبه شده لذا گفته ماضی با حال تناقض داره با کدوم ها تناقض داره با زمان ها اون گفته حال بکنه با بیان هیئت بعد گفته قد میاریم تا ماضی رو نزدیک به حال کنه تا با هم تناقض نداشته باشه قد میاد ماضی رو نزدیک به حال نحوی می‌کنه یا حال زمانی حال زمانی رابطه به حال نحوی نه. اولا بین ماضی و حال نحوی تناقضی نیست و ثانیاً ماضی میاد به وسیله قد نزدیک به حال. زمانی میشه نه حال نحلی. این بوده که برگشته مرحوم شیخ گفته قیل هست, قیل هست. اشکال داره این هست. کجاش اشکال داره که حال نحلی با حال زمانی نزده این آقا مجداری که در اشتباه شده و من سمه التوزم از پله حالیت المصدرت بلمازی میگه وفیه بخش مشهور میگه و در این قضیه در این مطلب در این استدلال بحثی است مشهور که من علاف خدمتتون عرض کردم پس علاوه این درسته که ماضی نیاز به قد داره اگه حال واقعشه. ولی نه به خاطر اینه که بیاره اون نزدیک به زمانه حالش کنه بلکه به خاطر اینه که فعل ماضی اگه حال واقع شد با قد میاد استعمال اینطوریه اما شما بیاید دلیل بیارید بر اینکه ماضی با قد باید نزدیک بشه به حال تا بتونه حال بشه این غلط است نزدیک بشه به حال یعنی زمان حال تا حال شود این دیگه ماضی با زمان حال تناغذ دارد نه با حال نقلی لذا ماضی میتونه حال با باشه. نیازه به زمان حال داشتن نیم. اگر اینطور باشه اون موقع فعل مستقبل هم نباید زمان محال با باشه. چرا چون اون فعل مستقبل با حال چیه دارد پس اونم باید یه قد برسرشتر رو لیست نزدیکش کنه به زمان پس حال، اینجا حال نحوی با حال صرفی مشتبه این بحث رو ما توی هدایای هم کرده قط. کلمه قط میگه تره دو اسم و اسمه فعله. مثل همون کلمه قده. این کلمه رو. قدن به معنا انته. اسم فعل است به معنای انته. یعنی چی؟ تاه اسم فعل است به معنای انتبه هست رو میکنید بدالت میکنه هست اما فقط فارسی خود رو میگه فقط تو فارسی چیه؟ من میگم شما میگه چند نفر اومده؟ میگم زید فقط یعنی آمده از زید فقط یعنی چیه؟ یعنی کسی دیگه؟ هست اومدن در زید که اکثرا میبینید که قط با چیه؟ با فاسه. لذا میگه و کسیرن و خیلی از اوقات کسیرن ما خیلی از اوقات توحلا بلقا توحلا یعنی چی؟ خیلیه یعنی زینت توحلا حلا یو حل میگه مچهولش توحلا زینت کرده میشه با یعنی قد به همراه بابا مثل این مثال نه و قام از ایدون فقط فقط تو اعرابش هم اینه مقنی بر زن میتوان مشکل فقط تو یعنی چی قام از فقط تو؟ یعنی زید استاد فقط یعنی کسی دیگه؟ نه استاد منحصر است در؟ سید. حالا این فقط تو یعنی فنتهه فقط تو یعنی چی؟ یعنی فنتهه یعنی دست میکش مشخصه؟ این دو جور ترکیب میکنن این فقط تو یه از یعنی این فاش باید هست فاش پای چیه؟ فرسیه. بای فرسیه کنون بود؟ تنا خوبه این که یه جمعه قبلش مخزوفه و این بیانگرشه میگن این طور بوده قام از ایدان فعظا علم تزالک فمتحه ان سال فعظا علم تزالکه فمتحه ان سال یعنی من به شما میگم که قام زیدان زید است. فقط این فقط تفسیرش چیه؟ یعنی اینکه که ازا علم اگر فهمیدی این مطلب رو کدوم مطلب رو؟ اینکه که زید اومده زیدیستانه اگر این مطلب رو فهمیدی فمتره انسوال دیگه از سوال دست بگشت دیگه, دیگه دیگران رو نگو دیگه از دیگران نپرس فمتره انسوال اون موقع این فقط جاش چی اومد؟ فنتهه. بعد قبلش چی بود اذا علمته؟ جاهل. جو فاش پوی فاسیج. بعضیان گفتن نخیر فاش پای زینت یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه ارزش به قول معروف عطفی، سببی، نمیدونم این دو سببیهه، این جو چیزا نداره زینت. پای زینت. یعنی فقط برای که کلمه غلط تو نباشه یا حالت نسبی نیمه داشته باشه، دو حرفی باشه. یه فهم گذاشتیم کلمه درست‌تر بشه زینت. نگه با این مطلب که داریم میگیم اون موقع میشه چی میشه فقط یعنی فن تازه همش وارد آره تنها اون دیگه چیزی قبلش ایست. قام ازیدون زیدیست بعد میگم فنته ان غیر دی دست پیچش از وارد کردن دیگران دیگه دیگران نیستن فن در از غیرش دیگه دست پیچش غیر دیگه نده فقط همین یعنی قطب به معنای اسم فقه شد اگر گفتیم قبلش شرطی در تقدیره این میشه فافایه اگر نگفتیم نه چیزی در تقدیر نیست این پوش زینت از عبارت مرحوم شیخ چی در میاد این در میاد که این فافایه زینت باشه اگر چون قرقل قوی که این فافایه طبیعی باشه چون فایز زینت رو نیاوردند اکثرا یعنی اکثرا بهش قائل نیستن ف و اون موقع اگه بگیم فافای زینته اومده بر سر قط بس کانه یک کلمه درشتر نشون بده و یه نظران فرق باشه با این قطی که الان بعد میخونی با این قطی که الان بعد میخونی میگه وظرفن لستقراغ لستقراغ باراش میشه شموع لستقراغ الماضی منفی میگن و قط که به معنای عبدن میاد قط به معنای چی؟ عبدن اما برای ماضی منفی ظرف میشه برای شمول ماضی، شمول گذشته، فعل ماضی، اونم در موقعی که منفی داشته یعنی مثلا من میگم ما را ایت و زیدن قد تو. ما را ایت و زیدن قد تو یعنی چی؟ یعنی من ندیدم زید رو قطع تو یعنی هر کس. ما را ایت و به روائد زیدن مفعول قد تو رو میگیم مبنی مف... مفعولاً مبني بر وزن محلاً منصوب مفعولاً به. و به معنای چیه ابدا ابدا در ماضی ابدا در زمان ماضی یعنی من ندیدم اون را ابدا هرگز مال زمان ماضی برای مستقبل چی داریم؟ اوزو در مقابلش تو مستقبل اوزو رو داریم اگه من گفتم ما رعی تو زیدن قط تو ولا اراه و اوزو یعنی چی؟ یعنی تو الان ندیدنش از این به بعدن تو آخر دنیا تو موقعی که زنده ام به معنای مازی و فیه خمس لغات در این قطو میگه 5 تا لغات هست قطو قط تا قط قطو قطه 5 تا هست یعنی 5 تا هست است تو جامعه و جامع و مستقبلا و این قطعی که ظرف از تو به معنای ماضی با فعل مستقبل نمیاد یعنی شما نمیتونید بگید لا اراه و قطع لا اراه و قطع و که باید بگید لا اراه و اوزو همونطور که اوزو برای ماضی نمیاد قطع هم برای مستقبل کم کم رو خوندیم کم خبریه کمه تو دسته کتابی که داشتیم عوامل ها دوتاش و هداری <تصفح> <تصفح> کمتر دو خبری و استفامی یتن. کم خبری اومده استفامی هموند و تشترکان بنا هر دوتا کم یه سری وجود مشترک دارن وجود مشترکشون چیه؟ هر دو و سکونن یک ولی افتغار علت تمگیز هر دو نیازه به چی دارن؟ تمیز دارن هر دو تمیز لازم دارن جزء مبهماتن و لزوم صدر و هر دو جزه عظامی هستند که دارای صدارتنی هم. هم سه تا اما مختصات هم دارن و تختصد خبریتو به جرد تمیز اما کم خبریه تمیزش چیه؟ مجروره حالا مفردن و مجموعن حالا یا مفرد از تو مجرور یا جمع از تو مجرور یعنی یه بار میگم کم کتاب اشترای تو؟ یه بار میگم کم کتاب اشترهی تو هر دوتاش یعنی چی؟ کم کتاب اشترهی تو یا کم کتاب اشترهی تو یعنی چه بسیار کتاب که من خریمم یعنی من مقدار زیادی کتاب خریم کم خبریه یه خبر بدیم از زیادی کتاب که خلیم. از نظر ترکیبی الان کم کتاب اشترهی تو کم چیه؟ معقوله اشتره حالا اگه گفتن کم کتاب ان اندی میشه چی؟ کم مقتدار اندی خبر مثل رفت بر از جوله نها ترگیش اگه گفتن چون کم هم مثل رفت بیش چند میشه مثل رفت کم خبری اگه گفتن کم کتاب ان هو، میشه چی؟ باب اشتره ها؟ و فعلی که تقدیر می‌گیریم کجا تقدیر می‌گیریم بعد از کم چرا چون صدارته اینو بختی که در مفکل به جلد تمیز مفردن اومج بود و استفهامیه اما کم استفهامیه چی کم استفهامی هم همین تراجی رو داره هیچ فرقی نداره کم استفهامیه به نسبت تمیزش میاد تمیزش منصوبه و لزوم افراده و همیشه هم چیه مفرده یعنی میگم چند اشترای کم چند اشترای اشترایید تذکرتون باید دیدید سوال کن. کم کتابا اشتره ایت چی کم کتابا اشتره چند تو کتاب قریدی الان میگه کم مقبوله اشتره ایت کم کتابا امدکه چند کتاب میشه کم کتابا اشتره ایت این هم ماله کم کیفه بذاری باشه بسالن با خانه همه دن با خیلی خلاصه چهلو او